سوره مبارکه ساد در سوره صافات همینه خانم که کسانی که مشرکین معتقدن اینها میتونن برای ما کاری بکنند، میتونن سفارش ما را بکنند، شفیع ما بشن، مثل انبیاء مثل فرشتگان، مثل جنات، اونا خودشون آزیزند. و در بار خدا فریاد می زنند از خدا کمک می خواهند چطور می توانند برای شما سفارش کنند برای شما پارتی بازی کنند حالا در سوره سات علا سبیل ترقی می خواهند حتی بعضی از همین کسانی که شما معتقدید که اونها می تونن برای شما کاری بکنند شفی بشند خودشون گرفتاره تکالیف و آزمایشات الهی شدند، گرفتار شدند، مبتلا شدند. در این سوره ذکر انبیا میاد و میخانیم که اونها به مشکل برخوردند. اونها خودشون وقت گرفتار میشند انواع مشکلات برای اونها میان. اونا چطور میتونه مشکل کسی دیگر را حل کنه؟ این از کنم ربطه خلاصه این سوره در ابتدا این سوره هم تمهید همراه با ترغیب است برای بسوی قرآن و سرزنش بر علیه کفار مشرکین و پنج تا دلیل نقلی در این سوره بیان میشه یک دلیل عقلی یک دلیل واهی و در پایان هم اینجا هم بیان عجز هم فرشته و جن و بیان عجز انبیاء قبل زمی آیت الله می فرماید صاد از مقطعات است الله عالم به و القرآن ذی ذکر قسم به قرآن ذی ذکر یعنی قرآن شاهد است کدوم قرآن ذی یعنی دارای پند ذکر بعضی میگن پند چون قرآن پنده سراپا پنده بعضی گفتن ذکر اینجا به بمعنی شرف لذکر لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ این قرآن شرفی هست ای محمد برای تو عزتی هست بس قسم به قرآن دارای شرف و ارزش جواب این قسم مقدر است قسم بی این قرآن دارای ارزش که ما باقی موزع و شبحه جایی هیچ شک باقی نماند خدا همه مسائل را شفاف بیان کرد بل الذين كفروا في عزه وشقاق کسانی که کفر کردن اونها در تعصبند و اختلاف و دشمنی هستند عزت به معنی تعصب اینجا مخالفت اونها با قرآن مخالفند چون تعصب دارن و همچنین شقاق در حالت مخالفت با قرآن هستند خدا میترسونه اونایی که با حق با اهل غاق مخالف باشند و ضد باشند می دونی نتیجه چیه کم اهلکنا من قبلهم من قرن چقدر هارا ما کردیم قبل زینها از قرون متفاوت قرون مختلف فنادو اونها وقتی که عذاب آمد بر انها فنادو فریاد زدند فریاد زدند که خدا بداد ما برست اما الله می فرماید ولات حین مناس اون لحظه لحظه خلاصی نبود ولات لای مشابه به لحاظ این تا تای تا است ولات تا یعنی وليسا وليسا الحین حین مناس اون لحظه لحظه دیگر نجات نبود چرا زمانی فریاد زدند که اذاب آمده بود وقتی اذاب خدا بیاد هرچی انسان زاید بکنه اذاب دیگه پس بر برنمیگرده لذا الله می فرماید این اقوام اقوامی که سرکشی کردند اقوامی که کفر و تمرد کردند وقتی که عذاب آمد فریاد زدند اما دیر شده بود وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ یعنی ليس الحین و حین مَنَاسِ مناس من بمیانه خلاص نجات رهایی. اون لحظه لحظه رهائی نبود لحظه نجات نبود و عجبو، اونا چرا انکار کردند؟ همون علتی که مال مشرکین است، مال پیشینیان بود و عجبو انجا اهم منذر من هم اونا در شگفت افتادند، در تعجب افتادند از این آمد پیش انها بیم دهند ای از انها ترسانند از انها چرا این ترسانند پیامبر؟ بشر است و قال الكافرون هذا ساحر كذاب گفتند کافران این جادوگری دروغگویی است الا یاذ بالله پیغمبر گفتند وانطلق الملأ منهم اجعل الالهه الههم واحده آیه قرار میده خدایان را معبودان را معبودیگانه این اشاره هست این آیه به اون داستان که ده ها بار شما اون داستان را شنیدید که ابو جهل و جمعی دیگر از سرداران قریش پیش ابو طالب آمدن گفتم برادر زاده تر بگو که با ما توافق بکنند ما به یک جمبندی برسیم او مخالفت خدایان ما نکند ما هم با او کار نداریم مزاحمش نمیشیم ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخواست دنبالش فرستاد آن حضرت آمد ابو طالب گفت که برادر زاده انہا آمدن چنین پیشنها دارن میگن تو مارا و خدایان مارا بد و بیراہ نگو ما هم با تو کار نداریم مزاحم کار تو نمیشیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من به اینها یک جمله بگم یک کلمه که اون کلمه را اگر به زبان بیاورند تمام عرب تابع اینها و خادم اینها میشه و غیر عرب هم تمام تسلیم اینها میشه ابو جال نمی دونست که اون کلمه چیه گفت و ابی که تو جان پدرت بگو یک کلمه نه 10 کلمه میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بس بگید لا اله الا الله عزی ناراحت شد اصلا با توحید مشکل داشتند گفتن که این همه خدا رو جمع می‌کنی یک خدا باقی همه رو تعطیل بکنیم ال الالهه الاه واحده همه خدایان یک خدا ببین اونا چه اعتقادی داشتن اونا این اعتقاد و این باور را داشتند که این دنیا و این بزرگی زمین اینقدر پهناور آسمان دریا این نظام را یک خدا نمیتونه اداره بکنه علی اعظم الله باید خیلی خدا باشه <تصفح> لذا بلند شدند ناراحت شدند گفتم بلنشی سردارا بلنشی بریم رفتند جلسه را ترک کردند گفتم بریم به همون دین خودمون استقامت میکنیم این شخص این آقا اشاره به رسول الله کردند این یه اراده دیگه داره این میخواد اصلا راه خودش را از ما جدا بکنه ان هذا لشيء يراد بعضي گفته اراده کین داره اینه که این بش سردار همه در راس همه میگه یک چیز جدیدی بگه که ما داشته نباشیم و همه دنبال این باشه این بش سردار همه لذا الله می فرماید انها وقتی که آمدند این اعتراض کردند اجعل الاله تا الها واحده آیا آل حرا؟ آیا خدایان را؟ الهی واحد قرار میده؟ معبود واحد قرار میده؟ اینها ذال شیء عنوجاب. همانا این چیز عجیبی هست. چیز عجیب و شگفتی هست. وانطلق نطلق منهم بلند شدن سرداران رفتن سرداران از آنها. آنیم شو با این موضوع که برویید دواس بهو صبر کنید بر خدایانتان ان ن ل یرات این چیزی هست که مادده یعنی باید به خدایان صبر کنیم ما سمنا به این چیزی که ایشون میگوید ما فیلم فلملت آخرہ حتی در همین دین آخری آخرین دین دین, دین مسیح بود آخرین. دین قبل از رسول الله دین کی بود؟ چون مشرقی می دین ما قبلا هست دین ما ابراہیمی ہے بعداً دین موسی آمد بعدن دین عیسی آمد در دین عیسیٰ حتی همچینی چیزی نیست آخرین دین تازه تازه تو اون دین هم چی بود مگر در دین عیسی تسلیس بود نا تسلیس یعنی چی؟ یعنی سی خدا قائل به سی خدا اونجا هم یک خدا نیست در واقع ایم اللہ دین فروش بودن که انسی خدایی را تراشیده بودند الان دلیلی برای مشرکان هم بود ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ما نشنیدیم این چیز را در دین آخری ان هذا الا اختلاق این نیست مگر اختلاق یعنی خود درست کرده خلق کردن درست کردن از سوی خود یعنی این چیزی که این از خودش درست کرده برسول الله می گفت پس ببین این اعتراضشون بر توحید بود می گفت چطور ممکنه همه خدایان را جمع بکنیم یک خدا و دومی اعتراضشون بر, بر خود پیامبر و رسالتش بود گفت در میان این همه ما آدم برشون تنها نواه آمده چرا بر ما نیامده انزل عليه الذكر من بيننا آية النازل شبر او پند ازميان ما بل هم في شك من ذكر الله يفرمون در واقع انها در شك اصنا از من يعني از كلام من از قرآن من بل لما يذوقوا عذاب بل عذاب من عذاب خدا رب نشنی نجشیداً كين ام عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب خداوند جا جوابشون میده اونا میگه میگفتن که چرا بر محمد نازل شده خدا میفرمه مگه خزانه دستی اونهاست، اونها اونا تقسیم میکنند بکی نبوت بدن بکی ندند به اونها چه ربطی داره خدا هر کسی را بر میکنه عليه علیه الذکر ها ام عندهم خزانه رحمت ربک این جواب همون اونزل علیه الذکر است آیا پیش اونها از خزانه های رب یعنی خزانه نبووت اون ربی که هم غالب است و هم بخشنده است به هر کسی بخواد او می بخشد ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما آیا برای اونها از پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینشان مگه در دستین هاست چنی ادعای کلا اگر در دستین هاست فل یرتقو اسباب یعنی اسباب سماوت در این راههای آسمان پرواز بکنن ارتقا بکنن برم بالا جندم ما اینجا خدای تعالی حقیقت رزک میکنه میگه ای پیانبری من شما نگران نباش جندم ما اینها یک لشکری هستند که شکست خورده محضوم شکست خورده من الاحذاب از بقیه لشکران ببین اشاره به این هست که در گذشته در گذشته خیلی لشکرهای دیگه بودن شکست خوردند لشکر عاد بود، لشکر سمود بود لشکر فرعون بود، اونا قدرتشون بیشتر بود اونا دبدبه و کبکبهشون بیشتر بود اونا شکست خورده، این هم جند ما یک لشکره کی هست؟ محزومون شکست خورده یعنی شکست می‌خورند. من الاحزاب یکی از همین احزاب دیگر قبلا بود الان اون لشکرهای گذشته کیا بودند تخویف الدنیوی و نمونه اعزاب کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کردند قبل از اینها قوم نوح تکذیب کرد و عادون قوم عاد تکذیب کرد و فرعون قوم فرعون تکذیب کرد اونهایی که زل اووتات اون فرعونی که زل اووتات بود دارای میخ بود زلعوتات قبلا هم عرض کردن چند معنا داره اما بهترین منش دارای میخ یعنی دارای استحکام. یعنی ساختمان های بسیار مستحکم اینا درست میکردن. ببینید خیم که میخش زیاد باشه اون خیمه محکمتره. منظور اینه که این فرآی ها، کاخان و ساختمان خیلی مجلل و محکمی این مشرکین مکه اینا تو چادر زندگی بیکنه اونا خیلی قدرت داشتن یا ظلعوتاد کنایه از قدرت خودشون خودشون قدرتمند بودند و سمود و همچنین قوم سمود قوم لوت اصحاب ال قوم شایب قبلا گفتیم ایکا جنگل انبو را میگند جایی که درخت زیاد باشه اولئک الاحزاب همه این گروها این کل الا کذب الرسل همه این گروهان نبود هیچ یک از اینها مگر پیامبران خودشان را تکذیب کردند همان گونه که قریش مکه تکذیب میکنه محمد را اینها همه پیامبران خودشان را تکذیب کردند فحق عقاب یعنی ثابت شد عذاب خدا عذاب خدا, عذاب خدا آمد فرود همه نازل شد همه اونها را حلاک و ویران کرد و ما هی انظر و حالا الله تعالی می فرماید این کسانی که اینطور بر شما ایراد می گئن. اینا منتظر نیستم مگر منتظر چیند؟ منتظر یک فریادند. صیحه فریاد اشاره به فریاد اسرافیل است اون فریاد را بزنید تمام دنیا تمام میشه. همه اینها در دم می میرند. در محضر خدا حاضر می و وما ينظر هؤلاء إلا صحيحة واحدة منتظر نیستن انها مگر منتظر یک فریاد هستند اون فریاد وقتی زده بشه ما لها من فواق نیست برای آن هیچ فواقی فواق انجا منظور و مراد فواق یعنی فرصت کم فرصت اندک ببین عصر فواق به چی میگویند فواق میگن بین الحلبتین بین دوبار دوشیدن شطر معمولا کسانی که شطر دارند شطر را شیرش را میگیرند میدوشند شطر را شطر و همه حیواناتی عادتی داره که شیر خودش را به اصطلاح محلی اینجا میگه میدوزد یعنی کل شیر را نمیده یک مقداری شیر میدوشی بعد شطور چیکار میکنه بیشتر شیر نمیده رهاش میکنی یک کمی بگردد دوباره میدوشی همین فاصله دوششیدن اول دوم را در زبان عربی میگه فواق این مدت مدتی کمی است لذا اللہ می فرمایت باندازه فواق ہم بینها فرصت داده نمی شیئی یعنی ان سیحه کبیت دیگر تمام ہے لذا اللہ می فرمایت وَمَا ينظرها هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيحَةً وَاحِدًا اِنها منتظر منیستم مگر یک فریاد یک جیغ مَا من مِن نیستن برای اونها برای اون هیچ فواقی، یه یعنی هیچ فرصتی اندکی. والفواق ما بین الحلبتهاین من الوقت. و قالو ربنا وقتی که به مشرکین گفته میشد چقدر جسور، چقدر بیباک و بی پروا، به اونها گفته میشد که بیچاره، عذاب خدا میاد در قیامت خدا شمارم. عذاب میده میگوفت اون عذابی که بناس در قیامت خدا به ما بده ما میخوایم علام بده به ما سهم عذاب ما را در همین دنیا بده چون قیامت را ما قبول نداش اونا این غد اونا بیباق و ربنا گفتند بار الها ای رب ما عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب عجلكم برای ما سهم ما قبل از روز حساب یعنی قطنا سهم ما کدوم سهم ای قد من العذاب الذي توعدنا تو به تفسیر بیزاوی این عذابی که شما را وعده میدی اون عذاب را قیامت به ما نده همین دنیا به ما بده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این کلمات را می شنید چقدر برو سخت می شد که چقدر اینا دین را مسخره میکنن قیامت را مسخره میکنن قیامت را انکار میکنن به اندازه مغرورن که میگه را همه الان برای ما بیار الله از و جل میگه ای پیانبر من تو صبر کن تو صبور باش عجله نکن اسبر علاما یقولون صبر کن بر آنچه که و ذکر عبدنا داوود زل عید یاد کن بنده مراد داوود را اون داودی که زلعید بود دارای قدرت بود ببین زلعید بعضی گفتند قدرت یعنی پادشاهی پادشاه باوجود که قدرت پادشاهی داشت اما داود صبر کرد زود اقدام نمی کرد منتظر فیصله خدا می بعضی گفتن زلائد این اشاره به قدرت مادی داوود نیست اشاره به پادشاهی داوود نیست اشاره به قدرت معنوی هست داوود وصفی که در داوود معروف بود چی بود عبادت خیلی عبادت می‌کرد داوود علیه صلاتو و سلام بسیار عابد بود عبادت داوود تو احادیث هم آمده یک صحابی گفت یا رسول الله من میخوام زیاد روزه بگیرم رسول الله گفت نه دوشنبه و پنجشنبه بگیر سه ماه هر روز بگیر دوشنبه و پنجشنبه آخر قبول نکرد گفت خب میخواد زیاد روزه بگیری مثل روزه داوود بگیره داوود چطور بود یک روز روزه بود یک روز نبود تمام زندگیش یک روز در میان روزه بود پس قدرتی که به داوود بخشیده بود چی بود عبادتش بود غیر از اون قدرت پادشاهی قدرت درونی و همین داوود علیه الصلاۃ و سلام شب یک پاس بیدار بود یک پاس میخوابید همیشه عبادت میکرد و داوود علیه الصلاۃ و سلام خدا را خیلی ذکر میکرد ذکر داوود را شما قبلان خاندید پس نماز داوود ذکر داوود روزه داوود اینها به داوود قدرت بخشیده بود لذ دا داوودی که قدر دارای قدرت معنوی بود عبادتش بالا بود صبر میکرد ای محمد تو هم صبر کن و ذکر و عبدنا داود زل اید یاد کن بنده ما داوود را اون داوودی که دا دارای قدرت است ان هو اواب همانا اون داوود رجوع کننده به سوی الله بود اواب از اوب هست اوا به من بار بار به خدا رجوع کننده. ببینی از اینجم ما یک نتیجه گرفتیم اون این است که اگر برای ما مشکلاتی میاد صبر چطور صبر بکنیم یک صبر اینه که بعضی میگن صبر نکنم چکار کار میکنم؟ مجبورم صبر کنم. نه این صبر نیست. اینکه تو میگی مجبورم من صبر بکنم این صبر نیست بعضی عزیزانشون رو از دست میدم. میری میگیم که صبر کن میگه صبر نکنم چکار بیکنم چی از دستم میشه نه این طور نه صبر اونه که همراه با عبادت باشه استعین و به صبر و کمک بگیر از خدا صبر کن نماز بخند داود علیه صلات و سلام که در مقابل دشمن که اذیتش میکردن صبر میکرد روزه میگرفت ذکر میکرد نماز میخواند همیش خدا رو یاد میکن پس ما مسلمان ها هر وقتی که مشکلات هست عبادت را دوبل کنیم ذکر را بیشتر بکنیم سجده ها را طولانی تر بکنیم این معنی صبر هست که بیشتر به خدا بچسب بیشتر خدا را تذکر کن بیشتر خدا را یاد کن دعا کن مناجات بخوان و بعد به پیغمبر می‌فرماید ببین داوود چطور همراه با کوه ذکر میکرد؟ دیروز ما خانه‌یم. و ذکر عبدنا داوود از الاعد داود دارای قدرت را یاد کن قدرت معنوی داشت انهو اواب همانا اون بار بار رجوع کنند بسوی الله بود اننا سخرنا الجبال معه همانا ما مسخر کردیم کوها را تابع کردیم هم را با داود یو بالعشی والاشراق یعنی صبح و شام تسبیح و تحلیل الله ربیان بیان می کنند بین تسبیح کوها بزبان حال نيس زبان حال الآن تسبیح ميگو يند يسبحنا بالعشي والاشراق تسبیحهن و بلسان قال لا اقن بزبان قال بودنا بزبان حال قول سهین مرادزین زبان زبان قال. هز وطير محشورة وپرندگان هم جمع کل له اواب همه و همه برای اللہ یا بر داؤد له مرجع زمیر دو تا است کل له اواب اواب یعنی رجع با زیاد رجوع کننده قبلانم خان زیاد به خدا رجوع کننده کل له بعضی گفتن کل له یعنی لداؤد کل واحد من الجبال والطير لی داود یعنی لعجل تسبیح داود رجعن الى تسبیح چون داود تسبیح میگفت این هم زیاد تسبیح میگفتن یا همه به خدا رجوع میگردن لهو به طرف الله اردو درسته وشددنا ملکهو ما ملک داود را محکم کردیم وآتیناه الحکمه به داود ما حکمت دادیم فصل الخطاب به داود نعمت دیگری که خدا داد نعمت فصل الخطاب بود فصل الخطاب داود به عنوان خطیب معروف بود سخنی که میگفت سخنرانی که میکرد اون دیگه فصل الخطاب بود پایان تمام خطاب ها یعنی از اون زیباتر کسی صحبت نمی کرد و حال همین داود را ببین خدا چطور امتحان کرد و حال اتاک نبا الخصم آیا خبری اون خصم پیش شما آمد؟ خبر اون خسم یعنی دو نفر که با هم خصومت داشتن دو نفری که با هم اختلاف داشتن خبرش را داری افتصور المحراب زمانی که از دیوار پریدن در محراب یعنی در عبادت خانه داود جای مخصوص عبادت میکرد، هیچ کسی در زمان عبادت داود هیچ کسی را نگهبانا نمی این دو نفر از رو دیوار پریدن تصورو یعنی از دیوار بالا آمدند در عبادت خانه مخصوص چون وقت عبادت بود در این وقت هیچ کس نمی آمد داودم اینها را نشنق وحشت کرد از اونها از و علا داوود زمانی که داخل, داخل شنن بر داود ففضع منهم داود ترسید از اونها قالو لا تخف گفتا ای داود نترس خسمانی ما دوتا خسمستیم دو نفرین که با هم اختلاف داریم اب چه اختلافی بغا باظنا علی بعض، ظلم کرده زیاد روی کرده بعضی بر بعضی از ما یکی بر دیگری ظلم کرده ببین ظالم کیه فحکم بیننا بالحق بین ما بحق فیسل کن ولا تشتت یعنی ستام نکون زیادروی نکن یعنی ستام و ظلم نکن وحدنا اله سوا استراط ما راه کنم به راه درست خب موضوعتون چیه مشکل شما چیه ان هذا اخيله 99 نعجه این برادر من 99 تا گوسفند داره ولی نعجه تو من فقط یک گوسفند دارم این 99 تا در من یکی دارم به من چی میگه؟ فقال اکفل نیها به من میگه اون یکی را هم به بی من بده تا مال من ست تا بشه هم اینطور به زبان خوش نمیخواد و عزنی فی الخطاب عزنی یعنی بر من غالب شده در خطاب یعنی زبردستی میکنه به و مرا تحت فشار قرار داده میگه باید این یکی را به بی من بدی تا مال من صد تا بشه داود علیہ السلام گفت قال لقد قد ظلمکا به سؤال نعجت که الان نعجی این برطو ظلم کرده که سؤال میکنه اد اون یه گسفند ترا با گسفنده دیگرش میخواد هم را بکنه مالش ستا بشه همون یکی راز توی مظلوم بگیره و داوود گفت خیلی از شرکا هستند در دنیا ظلم میکنند مصر همین و من الخلطه بسيار از شرکا هستند که لي بعضهم على بعض بعضی بر بعض ظلم کنند الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدم ظلم نمیکنند اما تعداد اونها هم اندک وقليل و قلیل ما هم هناك كما وقتی این را گفتند اون دو نفر هم دیگر را نگاه کردند و خندیدند و بعضی میگن ناپدید شدند اینجا داود متوجه شد که این امتحان الهی بود و ظن داودو یقین کرد داود که انما فتنناهو ما او را امتحان کردیم فستغفر ربهو از ربش معذرت خواهی کرد مغفرت طلبید، و خر را راکعن یعنی به سجده افتاد راکعن اینجا به من ساجدن هست به سجده افتاد و انا به سوی خدا برگشت توبه کرد ببینید اینطور که معلوم میشه داود اشتباهی کرده بود این فرشتگان آمده بودن به او تذکر بدن اینا وقتی که با هم دیگه گفتند متوجه شد داود اینا ماموریتشون تمام شد رفتند اما اون اشتباه چی بود قرآن ذکر نکرده فقط همینه که خدا مند داود را تفهیم کرد اما تو تفسیرها داستانهای آمده بیشمار چون که نه در قرآن هست نه در حدیث هست هیچ وقت نمیشه به این داستانها اعتماد کرد اما بعضی از این داستان که ذکر می کنم متاسفانه اهل تفسیر این داستان ها داستان های ناروایی هستند داستان های نامطلوبی هستند و بسوی داوود علیه صلی و سلام نسبت هایی که در شعن یک پیغمبر نیست در یک پیغمبر هیچی که در شعن یک انسان عادی هم نیست یک مومن نیست اون چیه بعضی داستان اوریا را مطرح می کنند اوریا می یکی از افسرهای جنگی یا از سربازان داود بود که با داود ارتباط داشت نزدیک اوریا می بلا نسبت این زن خوبصورت داشت زیبارو داشت که داود عاشق شده بود داوت خودش 99 تا است. می میخواست این یکی را هم بگیره لذا منده بود چطور چکار بکنه اوریا را به جبه فرستاد جایی که جنگ بود با دشمنان و سر مرزها اوریا را اونجا فرستاد اوریا اونجا رفت در جنگ در جبه تا اینکه کشته شد بعد داوود زنش را عقد کرد به مرادش رسید 99 تا چند تا شد 100 تا میگویند که اینها را خدا فرستاد به داوود نشاندهی دهی بکنه داوود داوری کنه تو اشتباه کردی تو مثل همون هستی که 99 تا گوسفند داره، اون یکی داره همون یکی را میخاید برای خودت داوود متوجه شد که این امتحان الهی بود کاش من این کار را نمی به سجد افتاد این داستان را ذکر کردند این داستان زیبنده ولایق پیغمبر نه یک مومن عادی نیست که انسانی را به جنگ بفرسته کشته بشه تازه نش را بگیره بنابراین علمای ما اهل تفسیر که اهل تحقیق هستند همه نوشتن که این داستان یک داستان دروغین هست حتی از سیدن علی الله وجه روایت شده حضرت علی می فرمود هر کسی داستان اوریا را بگه من سد و شست الله بهش میزنم. چرا سد و شست حضرت علی می گفت که کسی که به یک مسلمان تهمت بزنه هشتا زربش علاق میخوره نه ولی چون این به پیغمبر خدا تحمد زده دو برابرش میذارم چنانچه تفسیر مدارک نوشته قال علی من دسکم به حدیث داود کسی داود را برای شما بیان بکند علا ما یرویه القصاص بر اساس اون چی گویان و داستان گویان می گویند جلتوه مئتم و من یک و شس زرب شلاغ او رمی زنم و هو حد الفريه على الانبياء ان حد افترابر بر هست لذا این داستان داستان دروغین هست تفسیر خازن نوشته که ولیس في قصه داوود و اوریا خبر, و خبر ثابت خبر ثابتی وجود نداره این همه دروغ هستند خب جریان چی بعضی دیگه از تفسیرهای معتبر دیدم و حسرت خوردم اخصوص خوردم اینا چرا نقل کردم بعضی دیگه گفتن قصه فرستادن اوریا به جنگ دروغه اما زن اوریا را به شکل دیگه گرفت اون زمان عیب نبود که کسی زنی داشته باشه باش کسی معامله بکنه بگه زنی را طلاق بده من میخوام بگیرم ولی نسبت مثل این میشه که امروز کسی ماشین سواره کسی بگه که ماشین را بفروش من میخوام بخرم اون ماشین را میفروشه عیب نیست بعضی این گفتن که در عرف اون زمان و در شریعت اون زمان ایب نبود داود خودش زن زیاد داشت اما چون اوریا زن خوبی داشت بهش گفت طلاقش بده من میخوام باش عقد کنم و این مبلغ را بیت میدم اونم این کار را کرد لذا این ایب نبود به این صورت داستان را بازی توجیه کردن این هم متاسفانه درست نیست خلافه داستان های دیگری هم نوشتند که اینا هیچ کدوم بعضی میگن هیچ کدوم ثبوتی نداره بعضی میگن داود علیه صلی اللہ بر خطبه یک کسی دیگه خطبه کرد به این خاطر یعنی یک جا زنی بود کسی رفت برای خودش خاستگاری کرد داود هم پشت سر اون خاستگاری کرد خب این خاستگاری در شریعت ما در حدیث ما هم ممنوعیت آمده درست نیست کسی بر خطبه یه برادرش خطبه بکنه یعنی اون برادر دیگری دیگر مسلمان رفته از اون دختر خاستگاری کرده برای شما درست نیسته که شما بری خاستگاری کن بذار ببین با اون چیکار میکنه اگر بهش جواب رد دادن گفتن نه ما با تو وصلت نمی کنیم. شما بعدن میتونی. ولی در زمانی که خاستگاری کرده این درست نیست داود همین کار را کرده بود یک جای یکی خاستگاری کرده بود داود رفته بود بر خاستگاری او خاستگاری کرده بعضی این علت را نوشته بعضی میگن نه داود پشت بامش عبادت بین کرد و وقتی که عبادت را تمام کرد چشمش افتاد به زن همسایه زن همسایه لباس درستی بتن نداشت بی حجاب بود از این متوجه شد و تذکر ولی همه اینها ثبوت نداره نمیشه به صورت قطعی یک چیزی را گفت اینجا شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله یک توجیه دیگری آوردند که انسان قانع میشه این توجی توجی درستیه شیخ رحمه الله میفرما اینجا داستانی نیامده اما ما از خود همین آیه برداشت میکنیم یه چیزهایی را اون چیه ببین داود هم پادشاه بود هم پیغمبر خدا بود بین مردم غذاوت هم میکرد هل و فصل هم میکرد خدا میخواست به داود آموزش بده تعلیم بده غذاوت را چکار بکنه قضاوات را بهش تعلیم بیره یکی از های قضاوات اینه که هیچ وقت یک طرف قضاوات نکن یک کسی میاد مظلوم نمایی میکنه شما هنوز دفاع طرف را نشنیده فوراً بگی که این ملامت این ظلم کرده این خیلی بر تو ستم کرده نه شما حرف طرف دیگر را هم گوش کن لذا در قضاوت انسان نباید عجول بشه گاهی انسان خود ما گاهی اینجا بین مردم داوری میکنیم یه طرف میاد وقتی حرف را, حرف را شروع میکنه و از مظلومیت خودش میگه چنان آدم دلش میسوزه که انسان میگه این دیگه طرفش ملامته این را با جریمه کرد اما وقتی این تمام میکنه حرفش را اون شروع میکنه و نه مسئله برعکس میشه این تمام خلاف گفته دروغ گفته نباید به اون فرصت بدیم که اون دفاعی از خودش داشته باشه دلایل خودش را بیان بکنه پس اینجا جریانی شیخ میفرمای لازم نیست شده باشد جریان اتفاق افتاده باشد اینجا یکی آمد دو تا فرشته بودند یکی آمد مظلوم نمای کرد این ظلم کرد بر من خودش 92 تا در یکی من هم می خود داوود حضور نپرسید که جریان چیه تو قرآن دیگه هست از اون نپرسید داوود احساساتی شد گفت که ظلم کرد ستم کرد کار خوبی نکرد با تو میکنه خب ای داوود بذار اون یکی دیگه هم صحبت بکنیم بعدن حکم صادر کن پس همین که داود علیه صلی اللہ یک طرف قضاوت کرد شیخ می‌فرماید این اشتباه داود بود دیگر لازم نیست پس منظر این یک جریانی باشد اونا به هم دیگر نگاه کردن خندیدن بلند شدن ناپدید شدن داود متوجه شد چنانچه خداوند بعداً می‌فرماید یا داود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارف فحکم بین الناس بالحق و لا تتبعی ای داود به حق فیصل کن دنبال احساسات نشو پس شیخ می و اون چیزی که عرض کردم به دل منشیند همینه که اینجا لازم نیست داستانی دیگری شده باشد اتفاق افتاده باشد الله و عالم حالا ما ترجمه میکنیم بر اساس همین تفسیر که این تفسیر رد صحیح تر می دانیم لذا الله می فرماید دو نفر آمدند قالو لا تخف بداود گفتند نترس چون داود ترسیدین ناچی یهو از کجا آمدند خسمان ما دوتا خسم هستیم دو نفر با هم اختلاف داریم بقا بعضنا علا بعض بعضی بر ما یعنی یکی از ما بر یکی دیگه ظلم کرده فحکم بیننا بالحق ای داود تو بین ما حق فیصل کن و لا تشتت و زیاد روی نکن ستم نکن وحدنا الى سواء السراط مارا راه نمائی کن براه راست و وراه درست خب جاریانی تون چیه انا ذا اخی همانا این برادر من این دوست من لو تسعون و تسعون نعجا برائی اوحاس نبد نوح تاگ ولی نعجت واحدا من فقط یک بودگوزفند دارم فقال می گفته به من به من گفته اکفل نیها اون یکی را هم به من بده و في فی الخطاب و در خطاب بر من فشار آورده فیصل داود قبل از اینکه از اون طرف بپرسه قال لقد ظلمک بسوال نعجتی که لا نعاجه همانا ظلم کرده بر تو سوال با سوال کرده گوسفند تو بگوزفندان خودش و كثيرا کثیرا من الخلطا همانا بسیاری از شریکان هستند لیبغی بعضهم على بعض که تعدی می کنند زیاده روی می بعضی بر بعضی إلا الذين آمنوا مگر کسانی کی ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و ماهم ما هم انها خو خب وقتی که داوود اینا گفت وزن نداود، یعنی کرد داوود آن نما فتن امتحان کردیم، فاستغفر ربه استغفار طلبید از ربش و خر راکیع و آناب و افتاب بسجد و رجوع کرد بسوي خدا، فغفرنا له ذلك ما اورا بخشیدیم. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَبْ همانا براية داود نزد ما تقرب است زلفا يعني قربا پیشمات چی دارد؟ قربا دارد تقرب دارد وحسن معب وبرائ داود انجام زیباس آقبت زیبا آخرت زیبای هم دارد لذا ما به داوود اینطور فهمان و به داوود خطاب کردیم یا داود اینا جعلنا که خلیفتم فی الارض ای داود همانا ما تر خلیفه در زمین قرار دادیم فاحكم بين الناس بالحق بين مردون بحق فإس مطابق قانون فإس ولا تتبع الهوى هوا وخاشات خدترا يا إحساسات خدترا دنبال نكن بيرفين نكن فيضلك عن سبيل الله إن هوى نفسه إحساسات وخاشات إنسان ترى رحميكنا ميكنه خدا خدا ان الذين يضلون عن سبيل الله هم اناكسانك ازراء خدا گمراه بشند لهم عذاب شديد برای اونها عذاب شدید است بهما نسو يوم الحساب به اینکه روز حساب را فراموش کرده بس ببینید اینجا به پیامبر گفته شد که شما مثل داوود صبر کن و بعد بعضی از واقعات داوود هم ذکر بعد از این که این بحث بحث رسالت بود حالا خدای تعالی بر توحید و اثبات توحید دلایل ذکر میکنی دلائل رشم خاندید ما ترجمه میکنیم بحثای امروز زیاد است و ما خلقن السماع اول الارض و ما بینه و ما ما آسمان و زمین و ما بینشان را بیهوده خلق نکردیم باطل یعنی چه؟ بدونی هدف بدون مقصد ذلک ظن کفرو این اذ ظنوا كفار از گمان است ببین کافر طوری رفتار میکنه که اصلا زمین و آسمان بیهوده خلق شده کافر خودش را بنده خدا نمیدونه خودش را پایبند نمیدونه خود عبادت نمیکنه اصلا خدا را قبول نمیکنه فقط میگه ما بخوریم بخوابیم همین پس برای این پیدا شدید بیایی در دنیا بخورید و بخوابید دیگه برید پشت سر هم هیچ حساب و کتابی نیست بس اگر این طور باشه خدای طالب بدون هدف دنیا را خلق کرده نه خدا یک هدفی دارد ذات خدا حکیم است و کار حکیم خالی از حکمت نیست این دنیا بزرگ را با این گستردگی بدون هدف پیدا می کند زالک ظن اللذین کفرو، این جمآن جمآن کفارس، فویلُ اللذین کفرو من النار، ونای کوفکر دن فویل اسب را ونای فویل چیه؟ یعنی آتش، یعنی آتش جهنم. خدا میفرم مگه میشه؟ مگه میشه آخرتی نباشد؟ بیم اگر آخرت نباشد، واقعا یک مشکل بسیار بزرگی رخ میده اون اینه که در دنیا هر کسی خوب باشد و هر کسی بد باشد برابر میشن دیگه یکی صالحه یکی فاسد، اینا همه برابر میشن. مگر میشه چینی چیزی امکانش نیست از به خدمت شما قبلا من این مطلب را باز کردم توضیح دادم یکی هست ست سال زندگی کرده همیش صلاح همیش خیر. همیش طاعت و بندگی همیش معصاد و دردی با انسان ها همیش با همسائیگان خوبی بی یتیم ها رسیدگی به فقرا با هم دردی. این انسان در زندگی خودش ای و اراد نداشته اما یک کسی دیگه هست در کنارش همیش ظلم کرده همیش فساد کرده همیش دس... تو سر این اون زده مزد ظلم بر مظلوم ستم کرده حقش را پایمال کرده حق خدا را هم نادیده گرفته هر جنایتی که از دستش شده انجام داده خب الان اگه قیامتی نباشد این هر دو کار با هم برابر شد چون چه خوب باشی چه بد باشی دیگه تمام شد رفت مگه میش تین چیزی؟ به این خاطر الله میفرمه نه قیامت هست؟ ام نجعل الذين امنوا عمل الصالحات آیا ما قرار میدیم کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند کالمفسدین فی الارض مثل مفسدین در زمین یکی فساد میکنه یکی سلام میکنه یکی کفر و شرک داره یکی ایمان و عبادت داره مثل همند ام نجعل المتقین کالفجار یا اینکه ما متقیان را مثل فجار قرار میدیم قیامتی که باشه مثل هم شدن دیگه هر دو مردند هر دو تمام شدن نا این نیست اللہ می فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک این کتابی که ما نازل کردیم بسویتو ای پیانبر مبارک دارای برکات است، دارای نفع زیاد است، کسیر نفع لیت دبرو تا تاکہ در آیات این کتاب تدبر کنند همین آیه مثلا ما فکر بکنیم واقعاً دو انسان خوب و بد اگر جزای نباشه هیچ فرقی با هم دیگه ندارند ولی یتذکر اولل الباب تا اینکه اقلمندان پند بگیرند اقلمندان پند حاصل بکنند و وهبنا لداود وسلیمان خب تا اینجا تمام شد ببینید در این دو تا آیه دو جمله بودند هم توحید مبدا هم معاد هم یگانگی خدا ثابت شد هم قیامت پس ایناयत دارید که خدای عزوجل بدون هدف نیافریده بعد در ادامه چون بحث داوود بود نه و وهبنا لداود سلیمان ما به داوود سلیمان را بخشیدیم نعم العبد بهترین بنده ما بود چه بنده زیبایی اینه اواب او همانا سلیمان پسر مثل داود پدر اواب او بود یعنی بار بار به خدا رجوع میکرد همش به خدا رجوع میکرد یعنی در طاعت و بندگی یدی طولایی داشت اذا عرض عليه بالعشيه سافنات وقتی که ارز شد بر سلیمان بالعشيه در وقت شام بیگاه به اصطلاح بعد از ظهر الصافنات الجياد سافنات از گونه اسبای خوب از اسبای مرغوب ببینید در رابطه با تفسیر و توضیح این آیه هم اندکی اختلاف هست این اختلاف بیشتر بین صحابه هست ابن عباس رضی الله عنهما یه چیز میگه سیدنا علی رضی الله تعالی او یه چیز میگه البته بیشون نسبت داده شده بعضی گفتن این تفسیر علی هست بعضی گفتن این تفسیر ابن عباس هست الله عالم حال یک تفسیر اینه اون تفسیر راجه را بعدا میگم تفسیر اول اینه که این تفسیر بیشتر منسوب به سیدن علی رضی الله و تعالی نو اینه که عزرت سلیمان یه روزی رفت سلیمان اون زمان عصب نگهداری می کرد به خاطر جهاد شما میدونید که بزرگترین ابزار و آلات جهاد در اون زمان اسب بود مثل فرض کنید امروز اگر یک پادشاه بره از پادگان دیدن بکنه از محل تسلیحات انبار اصلاح دیدن بکنه اونجا چی میبینه پی تسلیحات پیشرفتر را میبینه میره مشک ها را میبینه مشک انداز ها را میبینه هوا های جنگی را میبینه تانک های نفربر. بر سلیمان علیہ السلام رفت که اصباح را ببینی این اصب نگهداری می شدم برای جهات وقتی که رفت چنان با اینها مشغول شد که نماز اصرش فوت شد نماز اصرش فوت شد بعد وقتی که برگشت دید که خورشید غروب کرد عصبانی شد ناراحت شد گفت بیادید دوباره اسپارا. اصفاره دا آوردند دستور داد همه را بکشید زبه کنید در رای خدا اینها را گوشتاشون رو تقسیم کنید این کار را کرده ایشون می پس سلیمان علیه صلی اللہ این به عبادت و به نماز اهمیت میداد که از به خاطر این نمازش تاخیر شد همه را قربانی کرد اما بعضی مثل امام رازی که این تفسیر را نمی بر این تفسیر اعتراض کرده چند اعتراض کرده یکی از اعتراضات میگه که اشتباه مال سلیمان بود از پا چی کرده بودم که از رو بکشد خب بعضی میگه خب از مال سلیمان بود دیگه قربانی مالی همینه اما چند تا اعتراض دیگه اینجا چون هست که وقتی ما ترجمه میکنیم حتی توارت بالحجاب توارت یعنی توارت شمس خب حضرت امام رازی میگه اینجا ذکر شمس قبلا نیامده این را شما قبلا دو کتاب های نفخانده این را میگه ازمار قبلا ذکر نه این خودش یک ایرادی هست اگر ما مراد از توارت توارت شمس بگیریم خورشید رفت خروب کرد بحث خورشید و بحث نماز اصل اصلا اینجا نیست ایشون میگه ابن عباس میگه و دیگه این که سلیمان گرفت مس کرد ساقاشون را و هایشون را مس کردن کی گفته حضرت امام راضی میگه کی گفته در لغت عرب به معنی گردن زدن است درسته اگر میگفت مسحه به با شمشیر مس کرد خب این به معنی گردن زدن میاد اما مطلقا مسحه بس بالع بالعنق به معنی گردن زدن نیست اون وقت اگر به معنی گردن زدن باشه امام رازی میگهت بس اینکه ما میگیم هم سهو برؤسکم سرایتون رمز کنی یعنی گردناتون رو بزنید وقت وضو کی گفته چنین ترجمه‌ای بنابرین روی این تفسیر اعتراض داره خب تفسیر صحیحش چیه ایشون میگوید از قول ابن عباس که حضرت سلیمان رفت و ااسا برای آوردند اصبح برای جهاد نگه داشته بود. خوشش آمد و گفت که اننی احببت حب الخیر ان ذکر ربی. من اگر اسب را دوست دارم مال را دوست دارم به خاطر ذکر ربم یعنی به خاطر جهاد است. این من به خاطر خدا است به خاطر جهاد است اما بعدا اصفار که بردند حتی توارت بالهجاب می فرماید توارت شمس جنیست توارت بحث سافنات بحث اصفار خوبه اصفار وقتی که از چشمش ناپدید شدند چنان محبت در دلیفید دوباره گو بیارید دوباره آوردند پس اصفار نوازش داد مسحم به سوق والعناق شما دیدید کسانی که اسب دارند وقتی که بخواند اسب را نوازش بدن یکی اینکه دست را به گردنش میکشند و یکی دیگه هر دو دست را بر مالش میدند به پای اسبار دستهای اسبار این درواقع نوعی نوازش بود نه اینکه گردن زدن اسبا این به منه گردن زدن نیست این امام رازی میگه او از قول ابن عباس میگه که میگه اولا لوکان مسح السوق والعناق قط اگر مسح گردن و ساق بمعنی قطش باشه لکان معنی قولی ومسحو بروسکم وارجرکم قط آها اینجا هم بمعنی قط میشه و هیچ کسی چنین چیزی نگفته بلو قیل, قیل به بسیف اگر بگه که مسح به بسیف باشه شمشیر مس کرد اون وقت درسته بمعنی ذربل اونو لذا الله می ما بر اساس تفسیر دوم ترجمه میکنیم اذ عرض عليه بالعشيه الصافنات الجياد زمانی که عرض شد بر سلیمان در وقت بعد زور ظہر اسب فقال اني احبب تحب الخير گفت همانا من دوست دارم مال را حب الخير خیر به معنی مال هست و انه لحب الخير لشديد ایل حب المال من این مال را دوس دارم عن ذکر ربی عن عن تعلیلیات به علت یاد پروردگارم یاد پروردگار چیه جهاد؟ حتی توارت بالحجاب ای حتی توارت السافنات از بها وقتی که بالحجاب یعنی پرده رفتم منظور از چشم غائب شدن چی گفت؟ ردوها علیه بردوها بر گردانیت انهارا فطف قمس بالسوق والأعناق پس گشت مس میکرد اونها را ساق هاشون را و گردن های شان را سلیمان ساق و گردن اس فر چکد مس کرد ولقد فتنا سليمانا والقينا على كرسي این امتحان دیگر برای سلیمان ما امتحان کردیم سلیمان را و انداختیم بر کرسی سلیمان بر تخت سلیمان جسدن یک جسدی ثم اناب سلیمان رجوع کرد بسوی ما منظور از جسد چیه ببین بعضی میگویند که سلیمان علیه صلی یک روزی گفت برای جهاد گفت که من میرم با خانم های خودم همخوابی میکنم از این خانومها خدا به من فرزند زیاد میده بعضی میگن 100 تا زن داشت بعضی میگن 70 تا با این 70 زن همخواب میشم خدا 70 تا پسر میده اینا بزرگ میشن همه مجاهد میشن ان شاء الله نگفت. خداوند از این زنها اصلا به فرزندی نداد فقط یک زن فرزند ناقص الخلقه ای آورد اون را همون دایه آورد و روی تخت سلیمان که این فرزند تو اینجا سلیمان متوجه شد به خدا رجوع کرد که من اشتباه کردم، به مشیت خدا نبستم این اراده ام را. بعضی این داستان را گفتم، به این طور روایت ها آمده، اما هیچ جای اشاره نشده که تفسیر این آیه و شان نزول این آیه همون داستان است. بنابراین بسیاری رد میکنند. البته اینجا هم یک داستان دروغینی گفتند که اون داستان اصلا با اعتقادات دینی ما هم خانی ندارد این داستان چیه میگویند که سلیمان علیه و السلام علیا زوج الله حکومت میکرد تلسم داشت جادو یک انگشتاری جادویی داشت یه روزی رفت که خودش را به شورت غصه بکند انگشتارش را گذاشت و بعدا یک جنی شیطانی اون را برداشت اون تلسم کرد اون جادو کرد دست به سرش کسید اون رفت سر تخت سلیمان سلیمان بعدن که آمد دیگه سلیمان هیچ جایگاهی نداشت پادشاهی را کسی دیگه گرفته بود جادو کرد سلیمان دنبال افتاد که این را چطور پس بگیر بیارد جسد میگه همون جسده یعنی همون شیطان است بعد سلیمان وزیرش آسف بن برخیا را پیدا کرد اون عاصب بن برخیا یک سری فنفوت های بلد بود خاند دوباره انگشتر را به دست آورد دوباره سلیمان تلسم کرد اون جن را بیرون کرد خودش به تخت نشست علی عزبی الله که این پیامبر با جادوگری پیش رفته. در حالی که پیامبران الهی جادو جادو که کفر است بنابراین این داستان هم یکی از داستان‌های دروغین هست که به هیچ وجه قابل اعتبار نیست. لا يصح ما نقل له من تشبيه الشيطان به و تسليته على ملكيه و تصرفيه إلى همه دروغی پس اصل جریان چی بود؟ الله عالم بعضی میگویند که سلیمان علیه سلات و سلام فرزند خودش را میخواست جانشین خودش بکنه فرزند خودش لایق نبود لذا چند روز سلیمان مریض شد خود سلیمان روی تخت افتاده بود جسدن یعنی همین جسد مریض سلیمان بعداً خداوان تفیمش کرد که وقتی که مریض هستی هیچ کاری نمیتونی بکنی او فرزندت که لایق نیست اونم مثل یک جسده اون را بر تخت میگذاری فورا سلیمان متوجه شد دوباره اون را از ولی عهدی عزل کرد و به عنوان جانشین انتخاب نکرد علا ای حالا این داستان ها را ذکر کردند الله بهتر میدان اصل جریان چی بود ما به صورت قتل نمیتونیم ذکر بکنیم اذا الله می فرمائے ولقد فتنا سليمان همانا ما ازموديب سليمان را والقينا على كرسي هي جسدا بر كرسي جسد ثم انا بعدا سليمان توبه کرد رجوع کرد سوی ما متوجه شد قال رب اغفر لی سليمان دعا کرد گفت بار اله مرا ببخش وحبلی ملکن و بمن ببخش چنان پادشاهی که لا ينبغي لأحد من بعدی سزاوار و شایسته هیچ کسی نباشد بعد از من انک انت الوهاب بار اله فقط و فقط توی بخشاینده تو می توانی چنان ملکی را بیمان ببخشی بی اللہ عز و به او هم بخشید چنان پادشاهی دار که هیچ قبل زون هم نداشته بعد زون هم نداشته ما این مطالب را خاندیم فسخرنا له الریح ما مسخر کردیم تابع کردیم برای سلیمان بعد را تجریب امری که به امر خدا بعد جاری بود رخا ان آرام آرام بعد توندی نبود بعد آرام آرام میبود حيث اصحاب هر جا که اراده می هر جا که سلیمان اراده میکرد، کرد باد به اونجا می برد و علاوه از اینکه بعد را در اختیارش گذاشتیم همه جنات هم در اختیارش بودند و شياطين شياطين و جنات کل بنائ و غواص هر یک از اینها کار بنایی می کرد و کار غواصی می کرد برای اقتصاد حکومت سلیمان می رفتند تو دریاها مروارید و تلاجم می کردند برای سلیمان و خزائنش را و همچنین ساخت و ساز می کردند اما بعضی از این جنات سرکش بودند و آخرین مقرنین فی الاسفاد دیگران بسته بودند در, در زنجیرها لذا ما به سلیمان این همه حکومت و نعمت و قدرت دادیم و به سلیمان اعلام کردیم. هزا عطا اونها. ای سلیمان، این عطای ماست، این داد و دهش ماست. فم او امسک به غیر حساب. از این مالی که خدا بداده، فم نون مننت بزار یعنی بر میخوای بده. تفسیر ابن عباس گفته فم یعنی آتی منشی هر کسی را میخوای بده. او امسک یا نگاهدار از هر کسی که میخایی. یعنی به هر کی بخاین نمیده نده بده به غیر حساب یا عطاونا بغیر حساب این عطای ما بغیر حساب است لذا ما به سلیمان اختیار دادیم و ان له عندنا لزلفا وحسن مآب همان برای سلیمان در دربار ما تقرب بود و انجام و عاقبته نیک و انجام خوب بود و ذکر عبدنا ایوب الله می فرماید بنده ما ایوب را یاد کن داستان ایوب را هم به صورت مختصر خواندیم که ایوب یکی از پیامبران الهی بود از پیامبران بنی اسرائیل ایوب را خدای تعالی همه چیز داده بود هم مال داشت هم زن و فرزند داشت هم طاعت و بندگی شب و روز خدا را عبادت می کرد تا اینکه خدا برای او امتحان آورد بعضی میگند که شیطان گفت که این هیچ کمبودی نداره بازم عبادت نکنه چون هر بنده که خدا را به راستی عبادت میکنه خداوند در محضر فرشتگان افتخار میکنه ببینی بنده من تو خب ابلیس اعتراض کرد گفت که ایوب که هیچ کمبودی نداره هنوز عبادت نکنه خدای تعالی برای او امتحان آورد مال را ازش گرفت سرمایهش تمام از بین رفت ارچه گوسفند بودن شطور بودن گاو بودن آفت آمد همه مردند اولاد را هم ازش گرفت در یک حادثه سقفی افتاد بچه تو بعضی تفسیران نوشته تا پسر و سه تا دختر یک جا مردند فقط زنش موند بعدن بعضم ایوب صابر بود عبادت می کرد آخر گفتن خب خودش که سالمه خداوند برای خودش مریضی هم آورد چنان مریضی آورد که مجبور شد از اون شهر خارج بشه گوشه شهر اونجا ازش زنش تیمارداری می کرد زنش زن با وفایش میرفت برایش از بخدمت شما که کار میکرد. و هرچی که کار میکرد نصف پول را برایش خوراک درست میکرد نصف پول را برایش دوام گرفت همیشه کارش این بود تا اینکه یک روز شیطان فریبش داد شیطان به شکل چون شیطان دید که هرچی که امتحان آمد اینا از را بی را نشدند لذا شیطان خاص از طریق زن ایوب اونا را گرفتار به خرافات بکنه. همیشه انسان وقتی مریض میشه سعی بکنه که خداش را راضی بکنه مستقیماً بدون واسطه از خدا شفا بخواد. بس آیات خدا را بخونه لذا شیطان به شکل طبیب ماهر جلوش رایش آمد و اون وقتی که مراجعه کرد گفت که من میتونم شفا بدم شوهر شماره ولی چند شرط داره شرطهای شیطان گرسی در قرآن ذکر نشده چیزهای خرافی بودن مثلا ابراین باز گفته که از او خواست که برای غیر خدا گسفند بکشه یا استمداد و استعانت از غیر خدا بشه وقتی که این زن مظلوم رفت پیش ایوب که امروز کسی را دید اینکه کاری نکرد چینی پیشنادی داد ایوب علیه سلام متوجه شد که این شیطان بوده ابلیس بوده ایوب علیہ السلام بسیار ناراحت شد و زن را تهدید کرد گفت خوب بشم قسم خورد ست زربش اللہ میزنم تو امروز پیشه این ملعون رفتی که ایمان ما را میخواد در خطر بندازی ایسا انسان وقتی که برش مشکلاتی بیاد و انسان رجوع بکنه به این نوع شیاطین و اون, ش... اون شیاطین از انسان کارهای بخاند که خرافات هست شرک هست خب جان انسان هم از بین رفته مال هم از بین میره ایمان هم از بین میره ناراتی ایوب از اینجا بود و اینجا دیگه فریاد براورد که خدایا رب انی مستنی الظر یا مستنی الشیطان در اون آیه شما خان دی دیروز روز مستنی و انت ارحم الراحمین چند روز پیش اینجا خدایا شیطان به من ضربه بزده مرا در رنج و در مصیبت قرار داده با این حرفا و پیشنهاداتش لذا اینجا بود که اللہ تعالی وقتی که ایوب از دل فریاد براورد خداوند برای شفا آورد برای علاج آورد دستور داد که پایت را بزن بعضی میگم پایت را بزن به جبرائیل گفت همین جا که هستی چشمه میاد چشمه که آمد هم از این آب بخور هم غسل بکن چنانچه ایوب خوب شد الله تعالی می تمام مالش را دوباره بهش برگرداندیم خدا دوباره مال داد برکت داد و اولاد و فرزندانش را هم برگرداندیم بعضیت تا نمیشتند همونها را زنده کرد خدا بعض میگن نه خدای تعالی چند برابر دیگه بهش داد علا ای حال این داستان ایوب هست که وقتی که مشکلات آمد او به مسیر اشتباه نرفت صبر کرد وذکر عبدنا ایوب یاد کن بندی ما ایوب را ها ان را گفتم که از فرزندان بنی اسرائیل دیگه نمیشه پدر ایوب و جد امجد ایوب عوص بود عوص ابن اسحاق یا عوض یا عوص که اون برادر اسرائیل بود برادری حضرت یعقوب بود اذ نادا ربه انیم سنی شیطان ندا کرد رب بشرا بار اله شیطان بمنظر بزده بنصب نصب میگویند رنج را تکلیف را و عذاب و شکنجه مرا عذیت کرده ارکد برج لکا بزن با پایت زیر پایت این محل محل غسل است باردن آب خونکی هست و شراب آب نوشیدنی هست و وابنا له اهل ما بخشیدن به اهل شرای و مثل هم مثل انها رحم ربا انها رحمت من این رحمتی زجان بی ما بود و ذکر <سطور> آل الباب پندی برای اقل من دام بود ولی ز وقتی که صورتیات گفت الله تعالى این زن مظلومه را چون سراسیمه بود، مستر بود، هنوز کاری هم نکرده بود، خداوند این را از این زن دفاع کرد و به ایوب علیه صلی اللہ سلام فرمود که شما یک چوب دستی های بگیر ست تا سیخ را، ست تا چوب باری کرا با هم یک جا کن و ببند یک ضربه بزن میشه ست ضربه الله. و خود بیدی که ضغسن بگیر به دستت ضغسن یعنی یک دسته ای از چوب باریک فضرب بهی بوسیل اون بزن ولا تحنس خودت را حانس نکن میخوای انسه این کار بکن. انا وجدناه صابرا نعم العبد. الله میفرماید ما ایوب را صابر یافتیم. نعم العبد بهترین بنده بود. انه اواب. همانا ایوب اواب بود. یعنی بار بار به خدا رجوع می‌کرد. ببین اینجا اصالت همه پیغمبران اواب آمده. ایوب هست، داوود هست، سلیمان هست. اینا همه اواب بودند. لذا هر بنده خوب خدا باید اواب باشه هر مشکلی به خدا رجوع کنه بار بار خدا را یاد کنه خدا را سجده کنه معذرت خواهی کنه وذکر عبادنا اینجا جمع دیگر از انبیاء را ذکر که شما با بعضی آشنا هستی در قرآن تفسیرشون آمده بعضی فقط اسمشون شون نمیدونیم نمی دونیم هستن عبادنا ابراهیما واسحاق و یاقوب یاد کن بندگان ما و, و یاقوب را والابصار داره قدرت عملي و علمي ايدي يد قدرت عملي را میگن ابصار کنایه از هست از علم دار قدرت علمي يعني هم ما بينها تواني عبادت داد دي بودين ولي في الطاعة وهم تشيني والأبصار والبسيرة في الدين ولي الأعمال الجميلة والعلوم الشريعة هم أعمال زيبا أيدي هم شريعة أبصار إن أخلصناهم بخالصة ما أنها ربار قزيدين خالصة برای ذکر دار یعنی اون مال آخرت بودن اون مال دنیا نبودن و انهم عندنا لمن المستفین الاخيار همانا انها نسما از برگذیدگان اخیار بودن اخیار یعنی بهترین ها و ان واذکر اسماعیل و يسع وذلك فل یادکن اسماعیل و يسع ذلک فلا ببین اسماعیل معروف است فرزند ابراهیم جد امجد رسول الله صلی الله علیه و اما یسع الله عالم کیه فقط دو جا اسمش آمده. بعضی میگویند در در انجیل یسوعیا ذک شده. بعضی پیامبران که بنی اسرائیل اونها رو شهید کردند بیشتر اسم چهار تا پیغمبر میاد. زکریا، یحیی، یرمیا، یسوعیا. این یسوعیا هم پیامبری هست که او را شهید کرد بنی اسرائیل بعضی میگن یسع همو یسعیا هست خیلی از مفسرین همین نوشتن و زلکفل میگن فرزند حضرت ایوب است. زلکفل ابن ایوب بعضی میگن که نه زلکفل جانشین الیاس بود الله عالم واذكر اسماعيل ولياس ياتكم بيانبر من اسماعيل وهذت يسع يارا وذ الكفره وكل من الاخيار هم انها از بهترين ها بودند یکی از یکی بهتر هذا ذكر ببین این معرفیه انسان های خوب انسان های از چه طریقی بر شما معرفی شدند از قرآن لذا الله انجا ترغیب سوی قرآن میره هادا ذکرن این قرآن پندی برای شما اندرزی هست برای شما و ان للمتقین لحسن مآب همانا برای متقین بهترین نتیجه هست لحسن مآب مآب یعنی عاقبت خوب نتیجه حسنه اون نتیجه خوب کی برای شما متقین انشاءاللہ از چیئے جنات عدن جنات جاودانے جنات ہمیشگی مفتحت لهم الابواب اون جناتی کی گشوده شده برا انہا درهای جنات همیشه در اون جنات شما میمانید متکین اونجا جنات کی بری همه غم و اندوه دنیا تمام میشه متکین فیها تک در اون جنات یدعون فیها بفاقهت کثیره و شراب می در آن جنات میویه زیاد و شراب و نوشیدنی هر نور نوشیدنی برای میاره و هم قاصرات و طرف اطراب پیش اونها در اون بهشت قاصرات و طرف هست یعنی هم سران و هوریه که چشمشون پایینه، چشمشون پاینه یعنی چه اونجا مگه هم دستور حجاب و حیاست نه چون دلداده شوهر هستند کسی غیر از شوهرشون را نمی بینن اطراب یعنی هم سن سالند تفاوت سنی؟ سن ندارا همی را خداوند همسه نسال قرار داده بعض میگه همه هوریه ها و به ها سی ساله یا سی و ساله هستن لذا هادا ما توعدون لیوم الحساب این آنچیزی از ای مؤمنان ما توعدون آنچه که شما داده می شوید لیوم الحساب برای روز حساب در روز حساب خدا به شما این نمت حرامی ده، این ها دال رزقنا، این هست رزق ما، اون عطای ما که ما میبخشیم به شما، ماله من نفاد، این پایانی نداره، این رزق، پایانی نداره، پایان پذیر، نیست همیشه و همیشه این ریسک اینجا در دنیا هر چیزی پایانی داره همین سلامتی هم آخر پایان داره آخر سلامتی از بین میره غلب شروع میشه غند شروع میشه کمر میاد فشار میاد فلان میاد یا مال هم تمام میشه خوشی دنیا و شادی هم تمام میشه هر چیزی خوب اینجا تمام میشه اما اونجا مالهو من نفاد برای اون هیچ پایانی وجود نداره حازا حازا یعنی این نعمت خداست این, این را بگیر به این دل ببند وَإِنَّ لِتَّاغِينَ لشر مَآبُ اما برای تاغین گران، سرکشان اون که در دنیا با سرکشی و با تمرد زندگی میکنند لشر آب. ترین نتیجه هست عاقبت و نتیجه بسیار بد هست. اون نتیجه بچه اون جهنم هست که صل اون نه داخل اون جهنم میشوند شون به سلاد جای استراحت بدی هست مهاد جمع محد است. محدسی رو میگن گهواره رو میگن گوار بچه رو میگن. یعنی اون, اون محل استراحات محل خواب اون رخت خواب رخت خواب بدیه چرا چون قبلا شما خاندید اون رخت خواب هم تو شکش از آتشه هم اون پتوی بالایش آتش یعنی بالا و پایین انسان آتش الله نجات بده هاذا یعنی گفته میشه این اون جهنم هست فَلْيَزُوْقُوهُ باید این رب بچشند حمیمون و غساق این همه آبجوش هست غساق قبلا خاندیم ما غساق میگوین اون آبی اون زردابی اون آب چرکی که علی عزبالله و بلا نسبت از زخمهای جهنمی ها میریزه خونه هر هرچی جمع میشه وآخر من شكله ازواج ان جهنميها را وقت ميبرند آخر يعني گروه ديگري را هم يارند من شكله يعني من مثله مثل همين ازواج يعني انواع انواع ديگري از مجرمين مثل انها انا را هم يارند مثلا یک گروه را بردند انا اهل شرك انا اهل کفر انا اهل النفاق انا مثلاً بودایی، اینا هندو اینا گاف پرست اینا ستاره پرست هر گروهی که میره همدیگر را نفرین میکنند الله میفرماید ها ظا فوج مقتحمون معکم این گروهی هست که مقتحمون وارد میشه در جهنم همراه با شما اما اونها وقتی که میبینن این گروه دیگه آمد میگن لا مرحبا بهم مرحبا کلمه خوش نه لا مرحبا بهم یعنی هیچ مرحبای برای اونها نباد خوش برای ما از اونها نیست اینا مثل ما آدم های بدی بودند اینا هم سال نار همانا اینها داخل شونده آتش هستند اونا وقتی میبینن با ما اینطور استقبال کرده از ما گفتن لا مرحبا بهیم اونها عصبانی میشند بعضی میگن اینهای که میگن لا مرحبا بهیم اینا مطبوعین اونها هستند رؤسای اونها هستند سردمداران اونها هستند و اونها تابعین و مریدان اینها هستند اونا وقتی میبینن که اینا ما رو نفرین کردند همینا ما رو گمراه کرده لا ما رو نفرین هم میکنه قالوا بل انتم میگن بلکه خود شما لا مرحبا بكم یعنی مرحبا ای شما ما بعدا هیچ نوع جای راحت مرحبا یعنی جای خوب جای راحت جای فرق جای خوبی برای شما نباشد. انتم قدمتموه لنا شما تقدیم کردید برای ما این راه را این مسیر راه را شرک را فبئس القرار بسیار جای قرار بدی هست جای ارامر ردی هست بعدا نفرین دعا بد میکنه قالوا ربنا من قدم لنا میگو ای بار الها هر کسی تقدیم کرد برای ما این مسیر را مسیر جهنم را فزده عذابا ضعفا من النار بیفزه در او عذاب چند برابر از آتش خلاصه هم دیگر نفرین دعا عبادت بعدا می یک گروهی در دنیا بودن ما اونا رو اشرار و انسان های پست و زلیل می دونیسیم اونا کجا هستن؟ خب اونا تو جهنم نبودن دیگه اونا جایشون بهشت ده قالو ما لنا می چه شده مارا لانرا رجالا نمی بینیم اینجا تو جهنم اون مردانی را که کُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ مَا از اشرار ما گرفتیم به مسخره عنهم یعنی کی اینجا هستند زاغت یعنی کج شد از اونها چشم ما ما نمیبینوشاد همینجا هستند الله تعالی ان این حق چی حقه همین که با هم دیگه جر و بحث میکنن با هم دیگه درگیر هستن اعلی نار این حق هست قل انما انا منظر حال بعد از اینکه احوال گزشتگان را خدا ذکر فرمود هم احوال انبیا را شما خاندید که این کسانی که شما میخانید ببینید خودشون در امتحانات و در بلاها و آزمایشات گرفتار شدن بعد از این ذکر ان انبیاء آمد و حقیقت روشن شد حالا مدعای سوره پیام می به پیامبر گفته میشه شما مردم را به این سوره دعوت بده قل انما انا منذرن بگو جزی نیست که من ترساننده هستم و ما من الہ الا الله الواحد القهار هیچ معبودی نیست بجز الله اون الله که یگانه است القهار غالب است اون اللہی رب السماوات والارض رب آسمانها هاست و رب زمین هاست و ما بینهما رب جو فضا هاست با بین هاس الغفار غالب از هر کسی نافرمانیش بکنے عذاب می دے الغفار هر کسی فرمان ببری اورا می بخشے قل هو نبع عظیم بگو مردم این خبر خبر بزرگی هست هو نبا عظیم کدوم خبر همین که پیامبر گفت که من پیامبر شما هستم و خدا معبود لا شریک شماست این حرف را معمولی ندانید تفسیر روحالمانی مدارک هر دو نوشته هو نبا هاذ الذي انباكم این که من به شما گفتم من کوونی رسولا منذرا که من محمد رسول منذری هستم و ان الله واحد لا شریک له این خبر خبر مهمی هست این را اهمیت بدید به این توجه کنید قل هو نبعون عظیم اما متاسفانه انتم عنه ماردون شما از این خبر اعراض کننده و رویگردان هستید اونا میگفتند خب وقتی که این طور هست شما چرا برای ما عذاب نمیاری عذاب بیار پیامبر جواب میده میگه من درباره ملائله هیچ علمی ندارم من علم غیب ندارم که بدونم عذاب برای شما در همین دنیا میاد یا نمیاد اگر میاد چه تاریخی میاد وقتی که فرشتگان با هم دیگه بحث میکنند نسبت به اونجا من علم ندارم فرشتگان وقتی که مسئولیت ها را تقسیم میکنند کارها را تقسیم میکنند اونجا سخن هایی که رد و بدل میشه من از اونها خبر ندارم ما کان لیا من علم نیست برای من هیچ علمی بالملئ الاعلا نسبت به بالا بالاین فرشتگان اید یختسیمون وقتی با هم دیگه بحث میکنن یختسیمون فی باب الوقائع در رابطه با اتفاقات یا بوقوع العذاب در باره وقوع عذاب بحث میکنن من نمیدونم دونم عذاب شما کی هست این یوحى الیہ خب به سوی من هر چی وحی میشه من همونه ای بلاغ میکنم وحی نمیشه به سوی من الا انما انا نظیر مبین مگر اینکه من نذیر آشکاری هستم ترساننده آشکاری هستم حال خداوند ذکر ملائکه را دوباره میاره ببینید ملائکه و جنات و انبیا تو این هر دو سوره اینا ذکرشون اومد اینجا خاندیم انبیا برای اونها مریضی می آمد برای اونها مصیبت می آمد اونها خدا را صدا می کردند و حالا می خوانیم ملائکه ملائکه چه جایگاهی دارن ملائکه خدا گفت آدم را تعظیم کنه آدم را سجده بکنه شما ملائکه عبادت میکنید و شیطان و جن چه جایگاهی دار خدا و را رانده کرد، لذت در آخر سوره ذکر ملائکه و جنات اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين زمانی که ربط چون این مطالب قبلا خوانده شده ترجمه میکنیم و جلوتر بریم ان اذ قال ربك للملائكه زماني که ربط به گفت اني خالق بشرا من طين من آفریننده یه بشر هستم از گل می آفرینم فإذا سويته زمانيک منور برابر کردم و نفخت فیهم من روحی و درؤون از روح خودم دمیدم روح بهش دادم فقاوله ساجدین بیفت برای او سجده کنان سجد فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجده کرد ملائکه همگی اجمعون سجد کردن الا ابلیس مگر ابلیس سجده نکرد، استقبر تکبر کرد، وکان من الكافرین از کافرین شود یا از کافرین بود هر دو تفسیر خاندید قال یا ابلیس ما منعك گفت ای ابلیس چی چیزی تورا مانه شد ان تسجد لما خلق تو بیدی این سجد کنی اون مخلوقی را که من او را آفریدم به دستان خودم یعنی با قدرت خودم از آیا تو تکبر کردی امکن تا من العالین یا واقعا تو از عالین هستی عالی یعنی برترین ها بالا ها تو از اونا میگه بله من عالی هستم قال انا خیر من ان یعنی ام من العالين درسته شیطان گویه در به خدا میگه قال انا خیر من من بهترم ازون خلقتنی من نار مر آفریدی از آتش و خلقته من طین و آفریدی از گل من بهترم چرا من من ora باید سجده کنم الله تعالی نارازی شد و الله تعالی اور را را قال فخرج فخرج یعنی بیرون برو بیرون از اینجا از بهشت یا از آسمان. آسمن منها از این بهشت یا از این سما، فإنک رجيم. همانا تو رانده شده هستی وإنان لیکه لانتهی إلعا یوم الدین برتو لانتي من از تا روز جزاء تا روز قیامت ملعونه قال رب فانظری نیا یومی وعسون بار الاهام من مهلت بده تا تاروزی که مردم از قبرها بلند میشوند. قال فا إنك من المنزرين خدا فرمود توم مهلت داده شده ای. اما یا یوم الوقت المعلوم. تا یومی وعسونه تا روزی که وقتش معلومه پیش من. ولما نوشتن نفخی اولا وقتی که نفخ اولا دمیده بشه همه میمیرن شیطانم میمیره. قال فا بعزتک لاوغبيان نهم جميعين قسم بعزت تو و بجلال تو که گمراه میکنم کنم همی الا عبادک من هم المخلصین مگر بندگان تو اونهایی که برگزیده باشند اونها را نمی تونم بغیر گمراه می کنم فرمود قال فالحق فالحق انجاد فالحق مبتده خبرش مقدره فالحق قسمی یعنی قسم من حقست والحق اقول و آنچه که هم حق میگم راست واقیت را میگم خدا تیمی خدمه بگه الله قسم یاد میکنه و این را با تأکید میگه لا املا ان جهنم ممین که حتما سوگند بزاتیم من از من پر میکنم جهنم را از تو یعنی از پیرآوانی پی تو و میمن منهم که لذا شما اگر شیطان را نفر تبعیت بکنین معنی این جای شما هم جهنم در پایان بعد از اینکه خداوند به رسول الله گفت که شما به آنها بگو که ما من اله الا الله الواحد القهار توحید را تبلیغ بکن و به آنها گوشزد بکن که دشمن شما ابلیس ابلیس قسم خورده شما را گمراه بکند ببینید مثل بقیه گمراه نشید از ابلیس خط نگیرید در پایان به پیغمبر میگه این مطالب زیبرا رو میگه بهشون بگو من اجر نمیخوام فقط شما عمل کنید قل ما اسالکم علیه من اجر نیست من سوال نمی کنم بر این هیچ نوع اجری و ما انا من المتکلف نیست من از متکلفین که تکلف کنم بر من فشار بیاد لذا فشار را عمل بکنم بگم اجر نمیخوام نه حقیقتا من نیازمند اجر شما نیستم این هو الا ذکر للعالمین این قرآن نیست مگر پندی برای عالمیان هست جهانیان و لا تعلمن نباهو بعد حین. اخبار قرآن که به شما قرآن خبر میده شما الان باور نمیکنید حتما حتما شما اونها رو میدونید بعد از مدتی بعد از مدت کی هست زمانی کی بمیرید. که بمیرید به محض اینکه انسان میمیرد زمانی که انسان چشمش بسته میشه به می چشمش میوفته حقایق را میفهمد اون وقت انسان توبه میکنه ولی دیر شده لذا الله تعالی میفهم بعد حین شما میفهمید